مصل چهار روم. تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابسندگی بخش اول پس از قرنها قفلت از حکمت یونان و روم باستان و گاهی خصومت با آن و پس از پاره کردن و سوزندن کتابهای متعلق به این حکمت و باقی ماندن نسخه های ناقص آنها در سرداب ها و کتابخانه های سومه ها سرانجام حکمت یونان و روم باستان در قرن شانزدهم دوباره مورد توجه قرار گرفت. نخبگان روشنفکر اروپا همگی به این نتیجه رسیدند که عالی ترین اندیشه که تا آن هنگام جهان به خود دیده بود، سماری افکار معدودی از نوابق دولت شهرهای یونان و شبه جزیره ایتالیا در فاصله ساختن پارتنون و قارت روم و اینکه برای افراد تحصیل کرده هیچ نیازی مهمتر از آشنایی با قنای این آثار نیست. چابهای جدید مهمی از آثار افلاطون لوکرتیوس، سنکا، ارسطو، کاتولوس، لونگینوس و کیکرو یا سیسرون و گذیده از آثار کلاسیک، کلمات قصار و امثال و حکم ارسموس، نسایه استوبیوس، الواه زرین آنتونیو، دو و تربیت شرافتمندانه پتروس کرینیتوس آماده شد و در سراسر کتابخانه‌های اروپا پخش گردید. در جنوب غربی فرانسه در بالای تپهی پردرخت واقع در سیمایلی شرق بردو کاخ زیبایی وجود داشت که از سنگ‌های زرد با سقف‌های قرمز تیره ساخته شده بود. اینجا خانه نجیب‌زاده‌ای میانسال همسرش فرانسواز دخترش لئونور مستخدمین آنها و حیواناتشان مرغها بزها سگها و اسبها بود پدر پدربزرگ میشل دو مونتنی این ملک را از درآمد حاصل از تجارت خانوادگی ماهی نمکسود خریده بود پدرش چند شاخه به آن و زمین زیر کشت را گسترش داده بود و خود مونتنی از سی سالگی به این ملک رسیدگی میکرد گرچه چندان علاقهای به مدیریت امور خانوادگی نداشت و تقریبا هیچ چیزی راجع به کشاورزی نمیدانست به سختی می توانم کلم هایم را از کاهوهایم تمیز دهم او ترجیح میداد وقتش را در کتابخانه دایره ای شکل در طبقه سوم برجی واقع در گوشه ای از کاخ بگذراند اکثر روزها و اکثر ساعت هر روز را در آنجا سپری می کنم کتابخانه سه پنجره با آنچه منتنی مونتنی چشماندازهای عالی و بدون مزاحم می خاند. یک میز، یک صندلی و در حدود هزار جلد کتاب در زمینه فلسفه، تاریخ، شعر و دین داشت که روی پنج ردیف قفسه به شکل نیم دایره ای مرتب شده بودند. اینجا بود که مونتنی خطابه شجاعانه سقرات، حکیم ترین مردی که تا کنون وجود داشته، خطاب به هیئت منصفه اجول آتن را به زبان لاتین در چاپ لاتین آثار افلاتون ترجمه مارسیلیو فیچینو مطالعه کرد. اینجا بود که او دیدگاه اپیکور درباره خوشبختی را در زندگی نامه فلاسفه یونان دیوگنس لارتئوس و در ستایش طبیعت لوکرتیوس چاپ دنیس لامبن در 1563 مطالعه کرد و اینجا بود که او بارها و بارها آثار سنکا نویسندهی بسیار مناسب طبع من را در مجموعه جدیدی از آثارش که در 1557 در بال چاپ شده بود خواند او از کودکی مطالعی آثار کلاسیک را شروع کرده بود. لاتین را به عنوان زبان اول آموخته بود. در هفت یا هشت سالگی مسخای اوید را خوانده بود. قبل از شانزده سالگی مجموعه از آثار ویرژیل را خریده بود و به خوبی با و نیز ترینز، پلاوتوس و تفاسیر سزار آشنا بود. دلبستگی او به کتاب چنان زیاد بود که پس از سیزده سال کار به عنوان مشاور در پارلمان بردو با این فکر بازنشسته شد که خودش را کاملاً وقف کتاب کند. مطالعه مایه تسلی خاطر زندگی او بود. مطالعه مرا در خلوت خود تسلی می بخشد. مرا از سنگینی بطالت اندوه بار آزاد می کند و در هر زمانی میتواند مرا از مصاحبت های کسالت بار خلاص کند. هر زمان که درد خیلی کشنده و شدید نباشد، مطالعه چاغوی درد را کند می کند. برای منحرف کردن ذهنم از افکار معیوز کننده صرفا نیاز دارم به کتاب پناه ببرم. ولی قفصهای کتابخانه هرچند به طور ضمنی به ستایش بیکرانی از زندگی فکری و اقلانی دلالت دارند، کل داستان را تعریف نمی کنند. باید دقیق تر به اطراف کتابخانه نگاه کرد، در وسط اتاق ایستاد و سر را به طرف سقف خم کرد. در میانه دهی 1570، مونتنی مجموعی از 57 نوشته کوچک داشت که آنها را از کتاب مقدس و آثار کلاسیک انتخاب کرده و روی تیرهای چوبی نوشته بود. این نوشته ها, ها از تردیدهای امیقی درباره مزایای تفکر بود. خوشبخت ترین زندگی، زندگی بدون فکر است. سفاکل آیا مردی را دیده ای که فکر می کند حکیم است؟ از مجنونان باید بیش از او انتظار داشته باشی. سربر مسئله هیچ چیز قطعی نیست مگر عدم قطعیت. هیچ موجودی سیه روزتر و مقرورتر از انسان نیست. پلینی همه چیز بسیار پیچیده تر از آن است که انسانها قادر به درک آنها باشند. کتاب جامعه بقیده فیلسوفان دوران باستان قوای اقلانی ما میتواند خوشبختی و جلالی برای ما فراهم کند که دیگر موجودات فاقد آن هستند عقل به ما اجازه می دهد که شهوات خود را کنترل و مفاهیم نادرست حاصل از قرایز خود را تسهی کنیم عقل نیازهای وحشی و سرکش جسم ما را تعدیل می کند و ما را به رابطهای متوازن با میل به غذا و جنسیت رهنمون می شود عقل ابزاری پیچیده و تقریباً است که ما را سرور جهان و خود میکند. کیکرو در مجادلات توسکولومی که نسخه‌ای از آن در کتابخانه ای موجود بود، به شدت از مزایای فعالیت فکری و اقلانی ستایش کرده بود. هیچ حرفه‌ای به شیرینی دانش پجوهی نیست. دانشپژوهی ابزاری است که به ما اجازه می‌دهد در حالی که هنوز در این جهان هستیم، لایتناهی بودن ماده جلال بیکران طبیعت، آسمانها، خشکیها و دریاها را بشناسیم. دانش پژوهی به ما پارسایی اعتدال و سعی صدر آموخته دانش ارواح ما را از ظلمت میرهاند و همه چیز، بالا و پایین، آغاز و انجام و تمام چیزهای در این میان را به آنها مینمایاند. دانشپژوهی ما را به ابزار خوب و شادمان زیستن مجهز می سازد. دانش به ما می‌آموزد چگونه زندگی خود را بدون نارضایتی و آزردگی سپری کنیم. گرچه منتنی هزار کتاب داشت و از تعلیم و تربیت کلاسیک خوبی سود برده بود. این ستایش چنان او را براشفت و چنان مخالف روح نوشته های موجود بر روی تیرهای چوبی کتابخانه بود که انزجار خود را با بیرحمی نامتعارفی نشان داد. انسان موجودی مفلوک است فقط به صدای لافزنی کیکه گوش بسپار. آیا این آدم لافزن صفات خدای قدیر و قدیم را توصیف می کند؟ در عمل، هزاران زن کوچک روستایی باوقارتر ملایمتر و استوارتر از کیکه روزیستند. فیلسوف رومی از این امر قفلت کرده بود که اکثر دانش به شدت ناخشنودند او متکبرانه مشکلات حراسناکی را نادیده گرفته بود که فقط خاصه انسان هاست. مشکلاتی که در لحظات تاریک و اندوهناک سبب می شود حسرت و افسوس بخوریم که چرا مورچه یا لاک پشت نیستیم یا بوز. من بوزی را در مزرعی چند کیلومتر دورتر از کاخ منتنی در روستای کوچک لگوشه پیدا کردم. این بوز هرگز نم مجادلات توس کیکرو را خوانده بود؟ و نه در باب قوانین او را و با وجود این راضی به نظر می رسید در حالی که به برک های بی صاحب به می زد و گاه و بیگاه سرش را مثل پیرزنی که مخالفت بی سر و صدایی را ابراز می کند تکان میداد. این زندگی ناخوشایند نبود منتنی خودش به مزایای زندگی به صورت حیوان و نه انسان عاقل دارای کتابخانه بزرگ پی برد و به تفصیل به این مسئله پرداخت حیوانات به طور غریزی می‌دانند چگونه در هنگام بیماری به خود کمک کنند. بزها در هنگام زخمی شدن می‌توانند پونه کوهی را از بین هزار گیاه دیگر تشخیص دهند. ها پس از عف‌ای گزیدگی به طور خودکار دنبال مرزن جوش می می‌گردند و لک لک ها می می‌توانند خود را با آب نمک تنقیه کنند. برعکس انسانها مجبورند به پزشکان گمراه گران قیمت تکیه کنند. انبان علم پزشکی پر از نسخه های بیهوده است. ادرار مار مولک، فضله های فیل، جگر موش کور، خونی که از زیر بال راست کبوتری سفید گرفته شده و فضله ساییده شده موش برای درمان دلپیچه حیوانات ایده های پیچیده را بدون اینکه از دوره های طولانی مطالعه رنج ببرند به طور غریزی میفهمند. ماهی های اقیانوس متخصصان خودجوش طالبینی هستند. به قول منت هر کجا انقلاب زمستانی آنها را غافلگیر کند تا اعتدال بهاری بعدی همانجا باقی میمانند آنها حساب و هندسه را هم میفهمند زیرا همراه یکدیگر در گروههایی به شکل مکعبی کامل شنا می کنند اگر یک ردیف از آنها را بشمارید می توانید کل دسته را بشمارید زیرا همان عدد در مورد ارتفاع طول و عرض آنها صادق است سگها درکی ذاتی از منطق دیالکتیکی دارند مونتنی از سگی صحبت میکند که در جستجوی صاحبش با یک سراهی در جاده روبرو شد. ابتدا به راه اول، بعد به دومی نگاه کرد و پس از اینکه به این نتیجه رسید که صاحبش راه سوم را انتخاب کرده به سوی آن دوید. این دیالکتیک ناب بود. سگ از قضایای شرطی متصل و منفصل استفاده کرد و به نحوی اجزا را مشخص کرد. آیا اهمیتی دارد که تمام اینها را از خودش یاد گرفته باشد یا از کتاب دیالکتیک گئورگیوس ترابازانی؟ حیوانات اغلب در عشق هم ماهرتر از انسان ها هستند. منتنی با رشک و حسد داستان فیلی را تعریف می کند که در اسکندریه عاشق زنی گلفروش شده بود. وقتی زن گلفروش او را به بازار می برد، فیل با چنان مهارتی او را با خرطوم چروکیدهش نوازش می کرد که هیچ انسانی قادر به آن نبود. معمودی ترین حیوان مزرعه می تواند بدون هیچ تلاشی از وارستگی فلسفی خردمند ترین حکیمان دوران باستان پیشی گیرد. فیلسوف یونانی پرهون یک بار در کشتی با طوفان سهمگینی روبرو شد. همه مسافران حراسان شدند زیرا می ترسیدند که امواج خشمگین کشتی شکننده آنها را در هم پشکند. ولی یک مسافر متانت خود را از دست نداد، و آرام در گوشه نشست در حالی که سیمایی آرام داشت او یک خوک بود آیا جرأت می کنیم نتیجه بگیریم که موهبت عقل که این همه آن را می ستاییم و بر اساس آن خود را ارباب و خدای کل آفرینش می دانیم برای عذاب ما در ما به ودیعه نهاده شده است دانش به چه دردی میخورد؟ اگر به خاطر آن آرامش و متانتی را از دست دهیم که در فقدان دانش از آن می میبودیم. و اگر حال و روز ما را رو از خوک پرهن بدتر سازد منتنی شک داشت که ذهن چیزی به ما داده باشد که مستوجب سپاسگزاری باشد به ما بی دو دلی، شک، درد، خرافه، نگرانی درباره آینده، حتی پس از مرگ غرور، هرس، حسادت، رشک، آشفتگی، بلاحت، امیال رام نشدنی، جنگ، دروغ، بیوفایی، غیبت و فضولی داده است. ما به اقل آشفته میان حال و قابلیت خود برای قضاوت و شناخت فخر می فروشیم. ولی آنها را به قیمتی خریده ایم که در کمال شگفتی بیش از حد گران است. اگر منتنی حق انتخاب داشت شاید سرانجام زندگی به صورت بس را انتخاب نمیکرد. فقط شاید کیکرو تصویر خیرندشانی از عقل ارائه کرده بود. شانزده قرن بعد نوبت منتنی بود که عکس این تصویر را ارائه کند. اینکه بفهمیم حرف احمغانه ایزده ایم یا کار احمغانه ای کرده ایم، چیزی نیست. ما باید درس بسندهتر و مهمتری را بیاموزیم اینکه جز ابلهی ای نیستیم. بزرگترین ابلهان فیلسوفانی مثل کیکرو بودند که هرگز گمان نمیکردند ابلح ابله باشند. اعتماد بیجا به عقل، سرمنشه بلاحت و به طور غیرمستقیم ناتوانی و نابسندگی بود. زیر نوشته های مکتوب بر تیرهای سقف، منتنی خطوط کلی نوع جدیدی از فلسفه را ترسیم کرده بود. ای که تصدیق می کرد ما با موجودات آرام عقلانی بسیار فاصله داریم. همان موجوداتی که بیشتر متفکران دوران باستان میپنداشتند، ما بیش از هر چیز، نفوسی عصبی و مجنون، نتراشیده و آشفته ایم که در مقایسه با ما، حیوانات از بسیاری جنبه ها مظهر تندرستی و فضیلت هستند. واقعیت ناگواری که فلسفه مجبور به انعکاس آن بود، ولی به ندرت چونین کرده بود. پاره از زندگی ما مبتنی بر جنون و پاره مبتنی بر حکمت است. هر که آن را صرفاً محترمانه و منضبط بداند، بیش از نیمی از آن را نادیده گرفته است. و با وجود این، اگر نقایس خود را میپذیرفتیم و از ادعای نادرست سروری دست بر میداشتیم، آنگاه در فلسفه رستگاری بخش و پرمایه منتنی در میافتیم که در نهایت هنوز هم این حالت نیم آقلان نیم عبلهانه خاص ما، اقزایت بخش است.